قصه چهارم زن مشتی اصل که آمد بیرون تازه آفتاب زده بود. اسلام گاریش را آورده بود کنار استخر رو منتظر بود که با کت خدا بروند خاتون آباد ختم خواهر مشتی عنایت. کت خدا رفته بود خانه مشتی بابا میخواست که او را هم با خودشان ببرند. اما مشتی بابا بهانه میآورد. نه که مشتی عنایت با او بد بود. میخواست هر جوری شده از چنگ کت خدا خلاص شود که یک دفعه صدای گریه زن مشتی حسن را از کنار صخر شنیدند کت خدا پرسید کی داره گریه میکنه مشتی بابا گفت آره یکی داره گریه میکنه با عجله رفت بالای نردبان و سرش از سوراخ بالای در آورد بیرون و نگاه کرد زن مشتی را دید که چادر سیاهش را دور گردنش بسته و کنار استخر پند شده روی خاکها مرتب مشت به کلش میکوبد و گریه میکنه اسلام چند قدمی زن مشتی ایستاده و بحت زده نگاهش میکرد کت خدا پرسید چه خبره؟ مشتی بابا گفت زن مشتی اومده کنار استخر خودشو میزنه و گریه میکنه کت خدا پرسید چرا؟ مشتی بابا گفت من چه میدونم؟ شاید بلایی سر مشتی اصن اومده کت خدا گفت مشتی اصن که تو ده نیست رفته سه عملگی کت خدا سرش را بالا گرفت و گوش داد زن مشتی اصن چنان ناله میکرد و فریاد میکشید که کت خدا تاب نیاورد و دوید بیرون و مشتی بابا همان طور ماند بالای نردبان و سرش را دوباره از سوراخ بالای در دراز کرد بیرون کت خدا کنار استخر که رسید و یلیها ریختن بیرون آمدند، مهد زده، زل زدند به زن مشتی و همدیگر را نگاه کردند. اسلام خم شده بود و تون توند از زن مشتیاسن میپرسید چه خبره چی شده؟ و زن مشتی با فریاد گفت وای وای وای خاک به سرم شد خاک به سرم شد. ننه خانوم و خدا اول و بعد تمام بیلیها رفتند و جمع شدند دور زن مشتی حسن. روی سخر لاشه مرغی شنا می کرد که ماهی ها دورو برش می چرخیدند و ذرات چربی را که روی آب شناور بود می بلیدند. نن خانوم تا رسید نشست روبروی زن مشتی حسن و پرسید مشتی تو توبا، مشتی تو با چی شده خواهر بگو چی شده؟ زن مشتی که جماعت را دید دراز شد روی خاک ها صورتش جمع شد و بینیش تیر کشید و درشت عشق از چشمانش ریخت بیرون کت خدا خم شد و پرسید ننه خانم، خبری شده ها مشتی دوری شده ننه خانوم گفت نمیتونه حرف بزنه حالش به هم خورده مردها برن کنار برین کنار یه تیکه كهنه آتیش بزنین و بدین به من خواهر عباس یک تکه کهنه آتش زد و داد به نن خانوم نن خانوم کهنه را گرفت و پیچید شولهٔ آتش توی پارچه خفه شد و دود سیاهی بیرون آمد مردها رفتند و جمع شدند زیر بید و زنها آمدند و حلقه زدند دور زن مشتی حسن نن فاطمه گفت دستاشو بگیرین تکونش بدیم دو زن نشستند و دست‌های زن مشتی حسن را گرفتند و تکان دادند. نن خانم کهانه را گرفت جلو پینیش. چند لحظه که گذشت، مشتی تو با چشمهایش را باز کرد. بلند شد و نشست و دوروبرش را نگاه کرد و یک دفعه زد زیر گریه و بلند نالید. وای، وای، ای وای، خاک به سرم شد. مردها ها نزدیکتر آمدند. کد خدا هم آمد و ایستاد کنار نن خانم و پرسید بپرس ببین بلایی سر مشتی اومده نن خانم گفت حالا یکم آب بدین بخوره آب نخورده که نمیتونه حرف بزنه کد خدا نزدیکتر رفت و از زن مشتی اسن پرسید ببینم خواهر مشتی اسن که سالم و سلامته یکی از زنها کاسه آب آورد نن خانم کاسه را گرفت و گفت آب بخور آب بخور که بتونی حرف بزنی. زن مشتی اصن نیم شد گفت آب نخوردم میتونم بگم. میتونم بگم. میتونم بگم که خاک به سرم شده. اسلام به مردها گفت حتما برای سر مشتی اصن اومده. مردها سرشان را تکان دادند. نن خانوم کاسه آب را داد دست خواهر عباس و با تعجب گفت آب نخوردم میتونه بگه. آب نخورده می میتونه بگه؟ مردها عقب و زنها جلوتر نزدیک شدند و دور زن مشتی حسن را گرفتند و منتظر دادند. مشتی بابا از سوراخ بالای در داد زد مشتی اسلام! مشتی اسلام! خبری شده؟ اسلام با دست اشاره کرد که ساکت شود همه خم شدند زن مشتی با گوشه چادر عشقهایش را پاک کرد و گفت گاو گاو اسلام پرسید گاو گاو چی شده؟ زن مشتی گفت دیشب، دیشب، گاو مشت دیشب مرده مردها بوخت زده برگشتند و همدیگر را نگاه کردند ننه خانوم یک دفعه بلند شد و گفت چی؟ چی گفتی؟ زن مشتی گفت صبح که رفتم براش آب ببرم. دیدم دراز شده رو زمین و دست و پاشم دراز شده. دهنش پر خونه. مردها برگشتند و خانه مشتی اصن را نگاه کردند. زنها نجوا کردند و ننه فاطمه گفت یا امام زمان. ننه خانوم گفت آخه چرا؟ مگه طوری شده بود؟ زن مشتی گفت نه. توریش نشده بود. شب که رفتم طویله، سروم رو گنده، ایستاده بود پای آقل و میخورد. بابا علی از وسط مردها گفت، از کجا معلوم که چشمش نزدن؟ اسلام گفت، چشمش زدن؟ که این کارو میکنه؟ بابا علی گفت، شما نمیدونین، خدا همه رو از چشم بد حفظ کنه. نن خانوم آه کشید و گفت، آمین یا رب العالمین. خدا سرفه کرد و کلاهش را برداشت و دست کشید به سرش و گفت از کجا معلوم که مار نزدتش؟ مشتی بابا از سوراخ بالای در داد زد اسلام! مشتی اسلام! خبری شده؟ اسلام با دست اشاره کرد که ساکت شود مشتی توبا دستهایش را باز کرد و با التماس گفت حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ پسر مشتی سفر با صدای بلند گفت، هر کارم که بکنی یا هر خاکی هم به سر بریزی، اگه مرده که تا قیام قیامته، نمیشه زندش کرد. کت خدا برگشت و پسر مشتی سفر را نگاه کرد. زن مشتی اسن دوباره گفت، آخه من چه کار کنم، اگه مشتی اسن برگرده و ببینه که گابش مرده، جا به جا میفته و سکته میکنه. اسلام برگشت جاده خالی را نگاه کرد و مشتی بابا که تازه از راه رسیده بود از اسلام پرسید. خبری شده؟ اسلام گفت. ایس. کتخدا کلاهش را گذاشت سرش و رو کرد به اسلام و گفت. راست میگه. اگه مشتی اصلا برگرده و بدونه که گاوش مرده میدونی که چه حالی میشه؟ اسلام گفت. چه کارش بکنی؟ کتخدا گفت. من نمیدونم. تو بهتر از همه میدونی اسلام رفت روی سنگ سیاه مردهشوری و گفت کَت خدا گفت که هیشکی به مشیعتن که برگشت نگه که گاوش مرده پسر مشی سفر گفت هیشکی نمیگه اما خودش که برگشت و دید که گاوش نیست میفهمه که مرده همجنیستمشتی بابا اسلام که روی سنگ سیاه مردهشوری ایستاده بود بهتش زد و گفت راست میگه کَت خدا اگه بیاد و ببینه که گاوش نیست شکارش میشه کرد؟ کت خدا گفت شکارش میشه کرد؟ اسلام با صدای بلند به جماعت گفت کت خدا میگه هیشکی به مشی اصلا نگه که گاوش مرده عیالش بهش میگه که گاوش پسر مشی سفر دوید توی حرف اسلامو گفت بهش میگه که گاوش مرده کت خدا گفت مشری جفر میذاری مشی اسلام حرفشو بزنه؟ اسلام گفت عیالش بهش میگه که گاوش در رفته و اسماعیل رفته که گیرش بیاره. مردها ساکت شدند. اسلام از روی سنگ آمد پایین و گفت حالا چه بکنیم کت خدا؟ کت خدا گفت من نمیدونم که چه بکنیم. اسلام برگشت و به مردها که بحت زده او را نگاه میکردند گفت کت خدا میگه چند نفرتون بیاییم بریم خونه مشتی حسن ببینیم که گاوه را چه میشه کرد؟ مشتی بابا که این را شنید رفت کنار استخر. با چوبی که دستش بود شروع کرد به درآوردن لاشی مرغ از آب. اسلام و کت خدا و عباس و اسماعیل و مشتی جبار و موسرخه رفتند خانه مشتی حسن و زن مشتی حسن هم که گریه می و به سرش می پشت سر آنها راه افتاد. آفتاب از سوراخ پشت بام افتاده بود روی تیر وسط طویله و فانوس دود زده و تناب چرکینی را روشن کرده بود گاو مشتی اصن وسط طبیله افتاده بود و دست و پایش را جوری دراز کرده بود که انگار مرد ای خوابیده است چشمان درشتش نیمه باز به سوراخهای زاویه دیوار دوخته بود دهانش پر خون بود و به نظر میآمد که تنابی را پیچیده توی حلقش چپاندند. کت خدا خم شد و چشمهای گاو را نگاه کرد. اسلام و اسماعیل رفتند و نشستند کنار لاشه. اسماعیل با تکه چوبی که دستش بود، تناب‌های خونی دهان گاو را به هم زد. صدایی از گلوی گاو شنیده شد، مثل اینکه گلوی ایوان باز شد و تعدادی از تنابها قل قل کنان رفت پایی. زن مشتی اصن گفت میبینی کت خدا چه خاکی به سرمون شده؟ میبینی اسمایی؟ میبینی مشتی اصلاح؟ میبینی بدبختی ما؟ میبینی؟ کت خدا گفت لا الهه الا الله شکار میشه کرد؟ اسلام گفت آره کار از کار گذشته حالا باید موازه باشیم که مشتی اصن به خودش صدمه نزنه اسماعیل صرفه کرد و گفت مشتی اصن دیگه از دست رفته اون نمیتونه پا بگیره و آدم بشه مشتی جبار گفت خدا رحم بکنه زن مشتی اصن نشست و پشتش رابطی به تیر تکیه داد و زد سیره گریه اسلام برگشت و زن مشتی اصن را رو نگاه کرد و به اسماعیل گفت بهش بگو به که گریه نکنه به بخوارت بگو که کاری نکنه که مشتی اصن بفهمه اسماعیل رفت و نشست روبروی مشتی توبا. چپوغش را در آورد و چاخ کرد و گفت خر مشتیستان میگه گریه نکن کت خدا میگه گریه نکن کاری نکن که مشتیستان بو ببره اینو بگیر و یه پک بکش حالت جا بیاد سن مشتیستان هقه را خورد و چپوغ را از دست اسماعیل گرفت اسماعیل برگشت پیش مردها کت خدا دورو بر لاشه گاو گشتی زد و گفت کاش چند نفر دیگه هم با ما اومده بودند اسلام گفت: می‌خاین کجا ببرینش؟ مشی جبار گفت: پوستشو میکنیم و بعد میبریمش بیرون. اسلام گفت: مشی عثی آسَن کی برمیگرده؟ زن مشی عثی با حق حق گفت: امروز میاد. امروز اتمن میاد. اسلام نشست کنار دیوار و کلاهش را برداشت و دست کشید به سرش و گفت: پوستشو نمیکنیم. یه دفعه سر میرسه و اون وقت دیگه بدتر میشه. اسماعیل گفت: راست میگی، نباید این کارو بکنیم مشری جبار گفت ببریمش کجا؟ کت خدا گفت آره، کجا ببریمش؟ عباس گفت میبریم و میندزیمش دره اسلام گفت نه، دره نمیشه یه وقت میره پیدا میکنه کت خدا صرفه کرد و گفت آره، مشری هر روز از توی دره رد میشه و میره سهرا اسلام و اسمایل با هم گفتند نه، نمی بریم در کت خدا دوباره صرفه کرد و گفت عشق اسلام، بهتر نیست ببریمش شور؟ اسلام گفت شور؟ یعنی میگی ببریم اونجا؟ کت خدا گفت آره، بهتر نیست؟ اسلام فکر کرد و گفت نه، کت خدا میدونی؟ سر و صدا تو تمام محال میپیچه و بالاخره خبر به گوشش میرسه. کت خدا گفت حالا چه کار بکنیم؟ اسلام بلند شد و آجورها را از سوراخ دیوار طویله برداشت، آفتاب آمد و کاهدان و لاشه گاو را روشن کرد. زن مشتی جابجا جا شد و چادر را محکم پیچید دور کمرش و صرفه کرد. اسلام گفت، مشتی خانم چایتون کجاست؟ زن مشتی حسن برگشت و گفت، اون گوشه است و جلوی کاهتان را نشان داد. اسلام گفت، خیلی خوب، بندازیمش تو چا؟ بلند شد و کلاهش را برداشت و گذاشت روی کاهتان. مردها هم بلند شدند. اسلام به موسرخه گفت بدو بیل و کلنگ رو از خونه کت خدا بردار بیار. موسرخه مثل باد رفت بیرون. مردها همه بلند شدند. کلاه ها را گذاشتند روی کاهتان و آمدند. حلقه زدند دور لاشه. چیزی در گلوی گاف سوت میزد. نگاه که کردند. تنابهای خونی را دیدند که دوباره بالا آمده. دهان گاو را پر کرده است خاک ها را برداشتند و سنگ را کنار زدند چاه بزرگی پیدا شد اسلام سنگی انداخت توی چاه مردها همه گوش دادند بعد بلند شدند و رفتند سراغ لاشه اسمایل گفت میتونیم بلندش بکنی. مشری جبار گفت راست میگه زورمون میرسه که بلندش بکنی. اسلام گفت بلندش نمیکنیم. کنیم همین جوری میکشیم و میبریمش لبه چاه پاهای عقبی و دم لاشه را گرفتند و کشان کشان بردند لبه چا اسلام و اسماعیل و موسرخه یک طرف چاه ایستادند و کت خدا و مشتی جبار و عباس طرف دیگر چا پاهای عقبی و دم لاشه را گذاشتند لبه چاه اسلام گفت شما دوتا تا باشین من و اسماعیل هلش میدیم پایین کتخدا و عباس نشستند لبه چا و پاهاشان را گذاشتند روی کپل لاشه و منتظر ماندند. اسلام و اسماعیل و موسرخه رفتند بالا لاشه را کمی هل دادند به چلو. اسماعیل گفت مواظب باشین که خودتون نیفتیم. کتخدا و عباس ترسیدند و عقبتر کشیدند. لاشه دوباره آمد چلو. کتخدا و عباس پاهاشان را گذاشتند روی کپل گاو و فشارش دادند توی چا. لاشه که تا کمر توی چاه رفت، کت خدا و عباس هم بلند شدند و آمدند کنار اسلام و با اسماعیل و موسرخه پنج نفری دست به کار شدند. جلوتر که می رفتند، لاشه راحتتر توی چاه آویزان می شد و وقتی به لبه چاه رسیدند، دستها را رها کردند. گاو در حالی که دستهایش بالا مانده بود، با چشمان باز توی چاه سقوط کرد. هر پنج نفر خم شدند و نگاه کردند از سوی تاریکی هم همه همهی شنیده شد و آخر سر و صدای ریزش چیزی انگار که دهانه خیک آبی را باز کردند که ریخت و ریخت و تمام شد ماشی وقتی آمد توی خانه عباس و خواهرش نشسته بودند پیش زنش و گرم صحبت بودند مشتی خورجینش را گذاشت روی زمین و کفشهایش را کند و انداخت جلوی پنجره و عباس خوشو بش کرد و به زنش گفت، به و آب دادی؟ مشتی توبا جواب نداد. مشتی گفت، اگه یه روز من تو این خراب شده نباشم، حیوونکی باید از سشنگی جونش در بیاد؟ و سطل خالی را از روی سکو برداشت و بدو بدو رفت بیرون کنار استخر. اسلام گاریش را شسته بود و داشت مالبند. ها را محکم میکرد که مشیعسن را دید و با صدای بلند سلام و علیک کرد و گفت مشیعسن کی اومدی؟ مشیعسن گفت همین حالا اومدم. زنی که به گاب آب نداده ایون خدا داره از می میمیره اسلام گاری را ول کرد آمد طرف مشیعسن و پرسید به گاب آب نداده؟ مشیعسن گفت آره که نداده. زبان بسته داره میره اسلام گفت تو گاوه را دیدی؟ مشیحسن گفت نه ندیدم اما میدونم که در چه و روزگاریه اسلام گفت مگه باید نگفت؟ مشیحسن سطر را از آب استخر پر کرد و گفت چی را نگفت؟ اسلام صرفه کرد و گفت آخه اسماعیل رفته سراغش مشیحسن گفت سراغ کی رفته مش اسماعیل و با عجله به طرف خانهش راه افتاد اسلام در حالی که دوش به دوش مشتیحسن راه می رفت گفت سراغ گاوه مگه بد نگفت که دیشب در رفته مشتیحسن ایستاد و پرسید کی در رفته اسلام گفت طوری نشده حتما این حوالی هستش هر جوری شده پیداش می کند مشتیحسن گفت کی در رفته اسماعی اسلام گفت نه گاوه گاوه تو در رفته مشتیحسن شروع کرد به دویدن آب از سطل لپر میزد و میپاشید به پاها و پاچه شلوارش و او یک ریز فریاد میکشید دروغه گاوه در نرفته گاوه من در نمیره و اسلام گفت پیداش میکنند پیداش کردن همین امشب همین امشب میارندش مشی اسن کنار طویله که رسیدند ایستادند مشی اسن سطل آب را گذاشت زمین و چند لحظه رفت و فکر و بعد پاچه مرطوب شلوارش را دست کشید و با چشمان بسته در طویله را باز کرد و بو کشید و گفت در نرفته گاو من در نرفته همین جاست همین جاست اسلام گفت آره اسن آره دلخور نباش گاوه در نرفته مشیسن پشت کرد به در طویله و گفت آره همین جاست بوش رو میشنفی همین جاست ببین مشکی اسلام، نمی این آب را بهش بدی؟ داره ها؟ اسلام جلو رفت و گفت چرا؟ چرا بهش میدم؟ سطل آب را برداشت و رفت تو مشکی همانطور که ایستاده بود جرأت نکرد که برگردد و طبیله را نگاه کند صدای پای اسلام را شنید که رفت جلوی کاهدان و صدای گاو را شنید که پوزش را برد توی سطل آب و شروع کرد به خوردن اسلام که بیرون آمد مشتی همانطور پشت در ایستاده بود و از خوشحالی گریه میکرد. کرد. نزدیکی های غروب اسلام و کت خدا و مشتی جبار و عباس و موسرخه آمدن جلوی خانه مشتی اصن. پاپاخ و بز سیاه اسلام هم پیشاپیش آنها راه میآمدند. زن مشتی که جماعت را دید پا برهن دوید جلوی در. اسلام گفت اومدیم مشتی رو ببینیم. حالش خوبه؟ زن مشتی جلوتر آمد و اشاره کرد که یواشتر حرف بزنند. اسلام دوباره پرسید. چه کار میکنه؟ زن مشتی گفت. هیچ کار. میگه گاوش گم نشده. میگه گاو من گم نمیشه. در نمیره. اون همینجاست. در این به من دروغ میگی. کت خدا پرسید. نرفته تو دویله؟ زن مشتی گفت: نه. نرفته اونهاش نشسته پشت بام طویله و زل زده به بیابان نگاش کنی؟ مردها بام طویله را نگاه کردند و مشتی حسن را دیدند که روی بام طویله پشت با آنها جنباتمه زده زانوانش را بغل کرده نشسته است اسلام گفت خوب حالا چه کار بکنیم؟ کت خدا گفت بریم باش حرف بزنیم اسلام گفت آره بریم بهش بگیم که گاوش اونجا نیست زن مشیحسن گفت همش نشسته اونجا ای میخنده و ای گرگه میکنه میگه گاوه منم اینجاست دروغ میگی. اسلام به کت خدا اشاره کرد جماعت وارد حیات شدند و همه رفتند روی تل خاک کنار طویله سرهاشون را بردند بالا و ردیف شدند به هاشیه بام مشیحسن که برگشت و ردیف کله ها را دید اول ترسید و بعد که خوب تماشایشان کرد آرام آرام خزید جلو و چارزانو نشست و گفت مشتی اسلام تو چه آدم بدی هستی از کی با من دشمنی داری این چه کاری بود که کردی بعد برگشت و به کت خدا گفت کت خدا بهش بگو مگه با من دشمنی و پدر کشتگی داره اینو ازش بپرس که چرا زهری به من دروغ گفت من که تا حال بهش بدی نکردم دم استخر گفت که گاو در رفته من میدونم دروغ میکه میخواد منو بترسونه گاف من چجوری میتونه در بره در بره کجا میتونه بره کت خدا گفت آره مشتسند میدونی مشتسلام با دشمنی نداره با کی دشمنی نداره اینو راست میگه گاف در رفته آخه نمی پرسی که گاف کوش، نمی پرسی که مشت اسماعیل کجاست مشی جبار گفت مش اسماییل رفته بگرده گاوه را پیدا بکنه عباس گفت میخوای بیا برو همه بیال را بگرد هر کار بکنی نمیتونی مش شیخ را پیدا بکنی موسرخه گفت مش اسماییل رفته گاوه را پیدا بکنه زن مشیعسان که توی حیات ایستاده بود حق حق بلند شد مشیعسان با ترس خود را عقب کشید و گفت دروغه گاوه من هم اینجاست گاوه من در نرفته من بوشو میشناسم از اینجا نرفته بیرون اسلام گفت اگه گاود در نرفته و تو طویله است چرا نمیری پیشش موسرخه گفت برو پیش گاوت مشت عباس گفت برو پیشش مشت هستن جبار گفت آره برو چرا نشستی اینجا مشی اصن خود رو عقبتر کشید و نشست آن طرف سوراخ پشت بامو گفت من نمیرم پایین من هم اینجا میشینم کت خدا گفت چرا نمیری پایین مشی حسن گفت میترسم اگه برم پایین او مشی جبار دوید توی حرفش ببینی که گاوه نیستش؟ مشی حسن با صدایی بلند گفت نه نه گاوه هستش من میدونم من میدونم عباس گفت پس نشستی اینجا که چه کار بکنی مشی حسن دست و پایش رو گم کرد و گفت هیچ نشستم اینجا و اون نگاه میکنم میبینید داره از پروست میاد بالا ردیف کلده برگشت و ماه را که مثل باد بادک که, که از پروست بالا میامد نگاه کردند مشتی خندید و گفت آره من اینجا هم برین برین دنبال کارتون من اینجا منتظرم که ماه بیاد بالا تا من برم پایین و براش آب ببرم ردیف کلده از هاشیه بام رفت پایین و هقهق هقه گریه زن مشتی حسن دوباره از حیات بلند شد.